صفحه 558 جواهر فروش قبلا او را دیده بود شناخت و برای آنکه او بتواند به راحتی پیام خود را به شاهزاده بدهد از جای برخواست و به اتاق مجاور رفت بعد از آنکه گفتگو کنیزک اجازه مرخصی گرفت و رفت شاهزاده آثار شادی در چهره هش نمایان بود و نشان میداد پیام درخواهی را دریافت کرده است جواهر فروش دوباره نزد شاهزاده نشست و گفت به نظر میآید شاهزاده کارهای مهمی در قصر خلیفه دارند. شاهزاده که دوچار ترس و شگفتی شده بود پرسید چطور؟ جواهرفروش فروش پاسخ داد به خاطر رفته آمد غیرعادی این کنیزک شاهزاده پرسید: او را میشناسید؟ جواهرفروش فروش قف آری او ندیم مخصوص شاممس نهار سرآمد توگولی خلیفه است و چندین بار برای خرید جواهر به خانه من آمده است و اطلاع دارم که شون نهار هیچ رازی را از او پنهان نمی کند سخنن جواهر فروش اثر عمیقی در شاساده داشت و با خود گفت اگر او از روز من آگاهی نمی داشت این گونه سخن نمی گفت پس او از وضع من با خبر است شاساده که نمی چه پاسخ دهد سکوت کرد سرانجام سکوت را شکست و گفت شما مطالبی گفتید که نشان می دهد بیش از آنچه بیان کردید اطلاعاتی دارید و چنان چه آن چرا می دانید برایم بگویید؟ آرامش خاطر بیشتری به من خواهید داد از شما میخواهم چیزی را از من پنهان نکنید دواه فروش که در پی چنین فرصتی بود شرح... شرح کاملی از آنچه یه رابطه شاهزاده و شنس و نهار توسط ابن طاهر شنیده بود برای شاهزاده بازگو کرد و نصایح ابن طاهر را هم به شاهزاده یادآور شد که عواقب خطرناک این عشق به کجا خواهد انجامید ضمنا به شاهزاده گفت در این شرایط نباید ابن شما را تنها میگذاشت و برای حفظ خود از خطرات اعتمالی به بست می‌رفت. من آمدم که سمیمان در خدمت شما باشم و آدمی راز نگهدار و قابل اعتماد هستم می توانید به من مانند ابن طایل اطمینان کنید با این تفاوت که من تا پایان کار با شما خواهم بود و حاضرم شرف و زندگی خود را در راه شما فدا کنم و صمیمیت خود را به ثبوت رسانم شخصادی با شنیدن این سخنان خوشنون شد و احساس آرامش کرد. به جواهر فروش گفت خدا را شو که بعد از ابن تاهر شما را به من داد و تنها نیستم. نمی‌دانم با چه بیانی از محبت شما تشکر کنم. گرچه این کنیزک انگام خداحافظی گفت شما ابن تاهر را تشویق به رفتن به بسته کرده اید ولی من باور ندارم. جواهر فروش گفت من تشویق نکردم ولی مانع رفتن او هم نشدم. و آنچه را برایتان گفتم عین حقیقت است. شاهزاده گفت شما هم حرف و را عند انگارید چون کنیزک به خاطر علاقه زیاد بانوی خود و من چنین تصوری کرده است. من از مدتی تباادره نظر به این نتیجه رسیدند که کنیزک خبرها و نامه ها را از طرف شمس و نهار به خانه جواهه فروش براساند و شاهزاده هم نظر کنیزک را نسبت به جواهه فروش تغییر دهد و برای حه ظاهر بهتر آن است کم به خانه شاه رفت آمد کند جواه فروش در راه بازگشت به خانه خود نامی دید که کسی بدون توجه آن را در جاده انداخته چون در نام باز بود جواه فروش آن را گشود و آن را خواند ندیمه مخصوص من خبر ناگواری به من داد که ناراحتی من از آن خبر کمتر از ناراحتی شما نخواهد بود قیبت ابن تاهر به کلی و از امارا به هم زده است اما شاه ساده عزیز این ام نباید مانع ادامهٔ روابط ما باشد اگر ابن طاهر که مورد اعتماد شما بوده در نامسایدترین شرایط بر اثر ترس بغداد را ترک کرده است باید آن را یک پیشامد اتفاقی بدانیم ولی باید با بردباری در برابر این پیشامد خود را همچنان امیدوار بدانیم و به عشق و دلبستگی خود ادامه دهیم و در برابر این اتفاق ناگهانی پایدار باشیم هیچکس بدون زحمت و رنج به و مراد دل نخواهد رسید ما نباید نا و دل شویم، چویم بلکه باید به توجهات پروردگار متکی باشیم و بدانیم که بعد از آن همه دشواری و سختی پایاد خوش کننده کنندهی خواسته های ما را جامعه عمل میپوشاند خدا نگهدار. هنگامی که کنیزک مخصوص از سفر ابن تاهر به بسید آگاه می شود، این خبر را به آگاهی شنسان نهار می رساند. او هم این فاصله، این نامه را بلا فاصله برای شاهزاده می فرستد. که بر بی‌توجهی کنیزک به زمین میافتد و جواه فروش هم آن را پیدا می‌کند. فروش نامه را در جیب خود میگذارد و میبیند که کنیزک در وسط کوچه به اطراف نگاه میکند و در جستجوی چیزی با خود می گوید بهترین فرصتی است که اطمینان کنیزک را به خود جلب کنم. همین که جلوتر میرود کنیزک نامه ای که شما در جیبتان گذاشتید مال من است که از دستم افتاده. لطفا آن را به من بدهید. جواهرفروش فروش هم بدون آن که سخنی میگوید به راه خود ادامه می دهد هم به دنبال او حرکت می کند با این که فروش به خانه خود وارد می شود در این هنگام کندزک خواهش او را بدهد جواه فروش به او گفت من این نامه را به تو می دهم. زیرا می این نامه را بانوی تو برای شاهصاده ایرانی نوشته است. من تو را به اینجا کشندم تا به تو بگویم من ابن طاهر را تشویق به نکردم. او داستان عشق شاهزاده و بانوی تو را برایم فاش ساخت و دربارهی خطرات این عشق با من صحبت کرد و گفت همین جهت قصد سفر به بسته را دارد من که می دیدم شاهزاده و بانوی تو با رفتن ابن طاهر بدون مدد کار می میشوند دلم به حال او سوخ و نزدش رفتم تا آمادگی خودم را به جای ابن طاهر برای خدمت به او بیان کنم که تو را در آنجا دیدم شاهزاده هم می داند که من سبب رفتن ابن طاهر نبودم و حاضرم جانم را فدای دو دل کنم که شایستگی این دلدادگی را دارند. كنیزک هم از آشنایی با جواهرفروش فروش خوشحال شد و جواهه فروش هم نامه را به او تسلیم کرد هر دو به یکدیگر اعتماد کافی پیدا کردند و کنیزک به جواهرفروش فروش گفت: « بسیار خوشحالم که خداوند شما را به جای در سر راهی شاهزاده و بانوی من قرار داده. جواه فروش هم گفت این نامه را زودتر به دست شاهزاده بده و پاسخ آن را هم قبلا به من نشان بده و گفتگویی که بین ما صورت گرفت به آگاهی شاهزاده برسان چند هم باشه تا به فراوان به خانه شاهزاده رفت و بلافاصله پاسخ نامه را گرفت و به خانه جواهر فروش آمد که نامه را به اون نشان دهد مثل نامه به این شهر بود خندن نامه شما شدی فراوانی به همراه برد که بیانم قادر به وصف آن نیست در مورد غیبت و مسافرت ابن تاهر مرا دعوت به شکیبایی کرده بودی در حالی که نبودن او برایم کمترین اهمیت را دارد آن برایم حیاتی است وجود زندگی بخش توست که مرا زنده نگه می‌دارد، و سبب همه این ناراحتی ها دوری از وجود نازنین آن فرشته است و فقط تو می‌توانی درمان درد من باشی در چه هنگام امکان دارد بدون ترس نزد من بیایی و نگرانی از دست دادن تو را نداشته باشم تا فرارسیدن این چنین روزی چگونه باید تحمل کنم؟ آیا می توانم امیدوار بود که دیگر را خواهیم دید؟ تو مرا تشویق به پایداری می کنی. من هم فرمانت را بروی چشم می گذارم. زیرا با تمام وجودم گوش به فرمانت هستم خدا نگهدار جواه فروش بعد از خواندن نامه آن را به کنیزک داد او خواست به بانوی خود بگوید که می توانید اعتمادی که به ابتاهر داشتید به من داشته باشید. فردا هم را خواهیم دید روز بعد که آمد و تعریف کرد به شمس نهار بابی سبری در انتظار نامه بود نامه را خاند و گریست و به او گفتم میزاده و من شما را معرفی کردم و گفتم که شما حاضر به همه گونه فداقاری هستید من من خوشحال شد و گفت که نمی‌داند چگونه از شما تشکر کند و بسیار مایل از شما را ببیند و آمادگیتان را از زبان خودتان بشنود. جواه فروش اصحاد داشت که به بانوی خود بگو آمدن من به قصد شما خالی از خطر نیست زیرا معمولین قصد هیچکون شناسایی از من ندارند در حالی که ادم را می شناختند و برای او رفت آمد سهر بود و همه درها به روی او باز اما در مورد من وضع تفاوت دارد و است سبب ناراحتی هایی شود پس درست نیست که بی خود را به خطر اندازم و توضیحات مرا به بانویت بده كنیزک کوشش کرد جواهرفروش را قانع سازد که خطری در رفته آمد او را تهدید نمی‌کند زیرا او میتواند در این مورد به او کمک کند و به علاوه اگر خطری وجود میداشت بانوی او انتظار رفتن جواه فروش را به قصد نمیداشت فروش بعد از این سخنان خود را آمادهای حرکت کرد اما از شدت درس تمام بدن او شروع به لرزیدن کرد به طوری که کنیزک متوجه شد و گفت به این ترتیب بهتر است که در خانه بمانید و شمسنه برای دیدن شما ترتیب دیگری دهد کنیزک از نزد جواهرفروش فروش به نزد بانوی خود رفت و روز بعد بانوی خود را به خانه جواهرفروش فروش بود جواه فروش در کمال ادب و احترام به شمس هار خوش آمد گفت و او را در باره اتاق نشانید شمس هار باروی خوش و مهربانی از او تشکر کرد و گفت که نمی چگونه از محبت های او قدر کند و او را هرگز فراموش نخواهد کرد شمسان نهار بعد از چند جمله دلگرم کننده دیگر از نزد جواه فروش به سوی قصد روانه شد جواه فروش بعد از دفتر شمسان نهار فوراً به شاهزاده رسانید و دریان را برایش تعریف کرد ولی شاهزاده همچنان در اندوه بود و از روزگار شکایت میکرد تا اینکه جواه فروش به او گفت من افته آمد شما را به قصد شمسان نهار، به هیچ صلاح نمی دارم زیرا خود سار خطر را به تجربه در آنجا احساس کرده اید من ترتیبی می دهم که شما بدون خطر او را در محل امنی ملاقات کنید با شریدن این جمله شاهزاده جواه را در آغوش کشید و گفت شما با این فداکاری عاشق بیچاره ای را به زندگی و زنده بودن امیدوار می کنید خداوند نیک به شما بدهد. هرچه بگویی انجام می دهم جواه فروش از نزد شاهزاده به خانه خود رفت و فردای آن روز کنیزک به دیدن او آمد. جواه فروش گفت من این خانه را مناسب دیدار بانو شمسا نهار و شاهزاده می‌دانم. ولی خانه دیگری هم دارم که خالیست و آنها در آنجا آزادی بیشتری خواهند داشت. فقط باید وسایل و اساسی برای پذیرایی آنها مهیا کنم. کنیزک گفت در این صورت من نگر کاری برای انجام دادن نخواهم داشت. این را گفت تا مراتب را به آگاهی بانوی خود برساند. کنیزک بعد از مدتی به خانی جواهه فروش آمد و گفت بانوی من موافق است و امشب به خانهی که گفتی خواهد آمد و این کیسه یه را هم بگیر و خوردنی و نوشیدنی تهیه کن جواهه فروش کرد و گفت تو به خانهی که به تو نشان میدهم برو تا بتوانیم بانویت را راهنمایی کنی من هم برای تهیه اساس میروم. گفت جواهر فروش ظروف تلاو و نقره و قالیچه گرانبها و های زربفت از رفقای خود آریه گرفت و خانه را به طرز بسیار با باشکوه و شاهانه ای شاهزاده از شادمانی بسیار که به او دست داده بود، همه ناراحتی‌ها را فراموش کرد و قبل از رفتن بهترین هایش را پوشید و به خانه جواهر فروش رفت. چند نفر بعد از نماز مغرب با راهنمای یک کنیزک مخصوص و به همراهی دو تن دیگر از ندیمه های خود به خانه جواهر فروش رفت خدا می که دلت داده از دیدن یکدیگر تا چه اندازه شاد شدند از شادی توان سخن گفتن نداشتند و با نگاه با یک دیگر سخن میگفتند گفتند به قدی بود که جواهر فروش و ندیمه از تأثیر و شادی به گریه افتادند جواه فروش وسایل پذیرایی را آماده کرده بود و همه نوع خوراکی و نوشیدنی روی میز دیده می شد. نهار از جواه فروش اود خواست. جواه فروش بلا فاصله اودا به شمس و نهار تسلیم کرد. او اود را گرفت و شروع به نواختن کرد و اشعار آشقانه ای را به زبان حال دو داده بود زمزمه می کرد. در این موقع یکی از ندیمه ها سراسیمی وارد گردید و به جواه فروش گفت کسی از بیرون خانه چنان ضربات محکمی در وارد میکند کند که نزدیک از در را بشکند فروش با حالتی پریشان بیرون دوید نگهان دید گروهی از مردان مسلح در حیات خانه هستند معلوم شد در را شکسته و وارد شدند جواه فروش که در برابر آنها کاری از پیش نمی بود به گوشه ای استاد و مشاهده کرد که ده نفر از آنها به سراغ شاه ساده و شمس و نهار رفتند جواهرفروش فروش یقین حسر کرد که آنان فرستگان خلیفه هستند که برای دستگیری عاشق و مشوق آمدند او برای فرار از معرکه به خانه همسایه پناه برد تا نیمه شب سر و صدای رفت آمد و هم همه به گوش می رسید بعد از نیمه شب سکوت همه جا را گرفت جواهرفروش فروش هم شریع گرفت و با احتیاط به سوی خانه خود رفت و در ورودی را از جاکنده دید در تاریکی از صدای قلام سیاه خود را شناق که می گفت به خانه حمله بر شدند در این دو سه روز اخیر به یکی از خانه های دیگر هم در همین محل دست برد زدند آنها به خاطر اتفاقی گرامبه که به این خانه آورده بودید به اینجا حمله کردند جواه فروش خانه خود را کرد و فهمید که ظروف و نقره و کلیه اشیای گرانبهایی را که قرض گرفته بود راهزنان را بودند. فریادش به آسمان بلند شد و گفت چه خاکی بر سرم شد مال امانتی مردم را چگونه جبران کنم چه عذری می توانم داشته باشم در هر حال باید مال مردم را پس دهم و از این گذشته پس بدهشم و نه چه آمده است این موضوع به قدری مهم است که حتما به گوش خلیفه خواهد رسید و از ملاقات امروز آنها در خانه من آگاه می‌شود و من قربانی خشم او می‌شوم قلامه جواهرفروش زن دلداری ارباب خود گفت راهزنان ممکن است ها رو لغت کرده باشند یعنی جواهرات را برده باشند و خودش را رها کرده باشند اصلا همراه ندیمه هایش به قصد خودش رفته و شاهساده را هم به حال خودش گذاشتند آنها هم اموال مردم کار دارند سپس ادامه داد خدا را شوش شما آنقدر دارید که توان اموال مردم را بدهید و خلیفه هم در این باره هرکس چیزی نخواهد فهمید بنابراین بیهود خود را آزار ندهید تازه همه اهالی محل و رفقای شما هم میدانند که راهزنان به چندین خانه دیگر دست برد زدهاند هنوز کسی نتوانسته یک نفر از آنها را دستگیر کند جواه فروش به تعمیر در خانه پرداخت بد به ای که در آنجا زندگی میکرد رفت و با خود میگفت ابن تاهر از من آقل تر بود که در بغداد نماند و از گرفتار شدن به عاقبت این عشق خود را رهایی بخشید همونطور که با خود فکر میکرد خدمتکارش به او گفت مرد غریبه میخواهد او را ببیند جواه فروش آن مرد را ملاقات کرد و فهمید که او را نمیشناسد پرسید از من چه میخواهی گفت میخواهم شما را به محلی ببرم که در آنجا مطلب بسیار مهمی با شما مذاکره شود جواه فروش همراه این مرد را افتاد و تقریبا بیشتر روزها در حرکت بودند تا به دهچه رسیدند و با به آن سوی رودخانه رفتند و از آنجا هم پیاده از خیابانها و کوچه‌های بسیاری عبور کردند تا سرانجام به خانهای رسیدند جواهی فروش داخل خانه شد بهدنبال او مرد راهنما داخل شد و در را و با کلون آهنی در را و جواهرفروش را به اتاقی که ده مرد در آنجا بودند راهنمایی کرد که همه آنها هم برایش ناشناس بودند ده مردی که در آنجا بودند از جواهه فروش خواستند که بنشیند. بعد از چند لحظه، همه آنها دستهای خود شستند و بر سر سفره شام نشستند و جواهه فروش هم بنا به تقاضای آنها سر سفره نشست و بعد از خوردن شام، رئیس آنها پرسشهایی از او کرد. جواهه فروش فهمید که اینها همان راهزنان دیشب که خانه او را کردند. کرده‌اند. رئیس راهزنان از او پرسید: زن و مرد جوانی که دیشب در خانه تو بودند به چه منظور به آنجا آمده بودند جواهرفروش فروش که نگران سلامتی شمسان نهار شاساده بود گفت میهمانان من بودند بر سر آنها چه آمده است رئیس راه گفت نگران نباش آنها هر کدام به طور جداگانه در این دو اتاق مجاورند ما با آنها با احترام رفتار کرده ایم این از حقیقت را بیان کن جواهرفروش فروش می گفت به نظر میآید شما خودتان آنها را میشناسید. آنگاه رئیس گفت آنها خودشان به من گفتند ولی میخواهم از زبان شما بشنوم دواح فروش هم آنها را معرفی کرد و شرح اشق و علاقه آن را به دیگر برای شهر داد راه زمان که نام سگولی زیبای خلیفه و نام شاهزادی معروف ایران را شنیدند حیرت خود را نتوانستند پنهان نگه دارند و بلافاصله فاصله که آنها در حضور شمس و ناهار شاهزاده زانو زدند و پاهای آنها را بوسیدند و عذرخواهی کردند که آنها را به این مکان آوردند اند. ای گفت اگر شما را می شناختیم هرگز مزاحم شدیم و به اموال شما دست نمی زدیم از شما درخواست بخشش داریم. مقداری از اموال سرقت شده در اختیار ما نیست و سینی طلایی که فعلا در اختیار ماست تقدیم می‌کنیم. سپس سینی طلا را به جواهر فروش دادند همه هستند سوگند خوردند و اطمینان دادند که این راز عشقی را هرگز فاش نخواهند کرد. آنگاه رئیس راهدانان گفت ما آماده این تا شما را راهنمایی کنیم و به آن سوی دجله برسانیم. همه تا کنار دجله آمدند و آنگاه سوار قایق شدند. هنگامی که به آن سوی دجله رسیدند و از قایق پیاده شدند، گروه نَیبانان شب که در اطراف قصر خلیفه در گردش بودند، آنها را دیدند. و رئیس افسران نگهبان سوار بر خود را به کنار شمسون نهار و شاه و جواهه فروش سانید و پرسید شماها خود را معرفی کنید و بگویید در این موقع شب چرا به نزدیکی قصر آمدید همگی تقریبا را باخته بودند جواهه فروش گفت دیشب این راستانان که اصبا ما را با قایق به اینجا آورده اند به خانه من ریختند اموالم را غارت کردند و خودمان را هم با خودشان بردند اینک ما را آزاد ساختند ولی اولا را ندادند. در این موقع رئیس نگهبانان پرسید این بانو کیست و در اینجا چه میکند. همه از این پرسش احساس ناراحتی کردند. اما همین موقع شمس و نهار افسر را به گوشه کشید و نام خود را به او گفت. افسر به حالت احترام ایستاد و فوراً دقایق آوردند. در یکی از آنها شمس و نهار را نشانیدند و دو نگهبان برای همراهی با او سوار شدند. و در قایق دیگر شاهزاده و جواهر فروش را سوار کردند و نگهبان راهنما هم با آنها همراهی کردند. حال ما قایق شاهزاده و جواهر فروش را دنبال می‌کنیم. قایق شاهزاده اشتباهاً در نقطه‌ی آنها را پیدا کرد که درست مقابل در برودی به قصد خلیفه بود. شاهزاده و جواهر فروش از شدت ترس